بحث شماتت اعدا و دشمن شادی یکی از مشکلات بزرگ است برای انسان و هزارات همه مطرح کرده در عبارتی از امیرالمومنین سلام الله علیه هست که اشد اشدتم من البلا شماتت الاعدا شدیدترین بلا و ابتلای که مؤمن پیدا میکنه، این است که دشمن شاد بشه. وقتی انسان دشمن شاد میشه خیلی سخت برای انسان و عکس عملش خیلی مهمه. که انسان وقتی کسی حالا این دشمن میتونه مؤمن باشه، یعنی شیعه باشه، میتونه غیر شیعه باشه. میتونه پامیل باشه. پامیل سببی باشه، میتونه پامیل نسبی باشه حتی که دشمن انسانه و از بیابرویی انسان، از بیمشکل افتادن انسان شاد میشه انسان باید کار کنه در کلمات امام سجا سحمون علی هست که حضرت فرمودن که خدایا، این توپی رو به من بده که در مقابل شماتت اعدا صبوری کنم و خودم رو نبازم خودم رو مرتکب گناه نکنم. حالایه کسی شماتت کرده لبخم میزنه در مقابل مشکلاتی که بر انسان وارد شده و پوستخندی میزنه یا مثلا به شکلی با کلامی با عبارتی با کی که میندازه خوشالی خودشو میده این رو ما میتونیم مثل خودش برخورد کنیم بیوفتیم به بدی بیرا گفتن و برخوردای شنی و زشت و هم میتونیم صبر کنیم خب اگر صبر کنیم این عقده نمیشه این مشکل نمیشه در درون بشار نمیاد به انسان بعد مرضی روحی پیدا کنه خیر همینطور که مشکل مشکل بزرگی هست شادمانی دشمن مشکل بزرگی برای انسان صبر برانون هم زیادی داره فواهد زیادی داره بجوز این که انسان متکب گناه نمیشه وقتی جواب نمیده در ازاش خدا عجر میده در ازاش خدا به انسان مزد میده در همین دنیا در روایت داریم که صبوری در مقابل شماعتت و شادمانی دشمن باعث عجر میشه و باعث مزد دنیوی میشه جبران میکنه خدا به نوعی برای این که انسان بتونه رهایی پیدا کنه از شماتت اعدا حضرات محسومین رحای رو ان کردن یکی از راهاش همین پناه بردن به خودداست. اینکه خدای ما پناه می از شماتت و خوشحالی دشمن در مقابل مصیبت ها و گرفتاری همون این پناه بردن خودشی راهکاره. به خدا انسان باید پناه ببره و از او کمک بخواد که درگیر نشه با شمات اعدا در روایتی داره. از امام صادق سلامون علی که هر کس برادر مؤمنش رو در مقابل مصیبتی که دیده شماتت کنه نمی میره مگر اینکه در دنیا همین شماتت پاگیرش میشه این از اون گناهانی هستش که خدای نکرد کسی مرتکب بشه در همین دنیا پاپیشش میشه مثلش رو می‌بینه. این کنام امام صادق در کتاب شریف کاپی هم هست از روایات صحیحه در صحیفه سجادیه بازی که از روها رای رو که در دعای دهم هم اللهم ان شیطانه قد شمیتت به نا از شایع نا هو الان معصیت اک عرض میکنه خدای من شیطان وقتی من مرتکب معصیت میشم خوشحال میشه شماتت پیدا میکنه بر من که تونسته من رو وسوسه کنه من هم به وسواسش گوش بدم و مرتکب گناه بشم این معصیت بر تو باعث خوشحالی اوست بعد عرض میکنه که لا توشمت بنا بعد ترکنا لک خدا خدایا حالا که من تصمیم گرفتم مخالفت فرمان تو رو نکنم و به حرف شیطان گوش ندم که مرتکب معصیت بشم و او خوشحال بشه یه کاری کن که لا توشمت خو بنا بعد ترکنا یاهو لک یه کاری کن دیگه شیطون شماراتش تکرار نشه کنایه از این که خدایا کار کاری من دوباره مرتکب گناه نشم که مورد شماتت قرار بگیرم توفیق عبادت توفیق بندگی خودت رو توفیق تقوا و حبس هیجانات و احساسات درونی که من رو وامی داره به مخالفت شما خدای بزرگ رو کاری کن که من مرتکب گناه نشم تا مجدد شماسط دشمن منو نگیره پس اگر کسی میخواد مرد شماسط قرار نگیره باید از گناه دوری کنه یکی از راکار هاست باز در دعای چلو پنجم داره که امام سجاد میکنه خدای آفصله علی محمد و عاله خدای درود غربی مرا و سلام قلبی مرا بر محمد و عاله تاهیرنش برسان وسترنا به سطرک اون ایبها اون نقصها اون کارهای زیشتی که من رو جهالت و رو سپاهتم انجام دادم پستور نبی صدریک خودت بپوشون معلوم نباشه و افغان نب و افک و ما رو ببخش آب کن بدی کردیم زشتی انجام دادیم خودش بپوشون اون رو هر کسی نبینه بعدم آب کن ببخش ما رو ولاد تو سب نفیه یک کاری کن که نبین کسی اصحابت نکنه مارا دعیون شامتین اون نگاه شامتین به من نیفته و ببینن این نقص من رو این مخالفت فرمان من رو نسبت به خودت و بخندن، اینجور برزی ها میگه من که اهل گناهم من که اهل ایمان نیستم شما که مده هستید چرا شما تطمی کنن مخندنن خدای کار کن که من این نقص و که دارم و این کار زشتی که انجام دادم این رو دیگران نبینن و منو ببخشید که مورد شماتت شماعتکران و سرزنش کننده ها قرار نگیرم